بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا بحث در تحقیق <تصفيق> بود در که اینکه مرحوم شیخ الله متعرض شده انصافا مطلبی رو که ایشون فرموندن در صورت سوم که به لایعباد و سهر بردم محتمی کردن بر مسئله تخلق شرط مقدار انصافا خیلی وضوح نداره دیگه طولانی صحبت شد به همین مقدار استفاده. حاضر و طبق قاعده همینطور که از مرحومی روانی هم نهار هر حرفی ایشان به ذهن میاد اقواب اعتبار باشه و معامل در این صورت باطل باشه. هدف نفوذ نسبی فرقی که منظور شیخ متقی است. ما اما نسبت به تدفیس خب اگر گفت ده کیلو گندم فروختم به این قدر به ده هزار تومان و این گندم که الان تحویل می‌ده هشت کیلو سو. پس قواعد معمول درسته با دو کیلو اضافه اما اگر گفت این کیلو گندم رو این گندم خارجی و فروختم که علم دارن که دو طرف با عنوان ده کیلو یا اعتقاد مشتری فروختن به 10 هزار و بعد 8 کیلو در بیاد اینجا بحث وقت تخلف علمه اگر قائل بشین که تخطیخ به مقدار محقق میشه چون مفهوم ایروان گفتن که اصلا تخطیخ محقق نمیشه اگر قائل بشین تخطیخ بی مقدار محقق میشه و هم حرامه این شبهه خیلی قویه که معامله باطل باشه در حالی که انصافا به ذهن میاد اروا در مساله این که تخلف علم بیش از این تاثیر نکنه که یک نصیار تخلف راست ورشونه معامله باطل نباشه بلکه احتمال صحت معامل هم هست بلکه بریده صحبا بریده و اما صورت سوام که ایشون در رواه آوردن مرحومشه قدس ستون اگر تطفیف تنها باشه بگه این, د... این گمزم که دهکیبی و سرخ ظاهرا ظاهرن معامل درسته فقط یاد خلاف ورس این راجع به مسئله تطفیف و در تطفیفی تره دیگه هم سابقا مطرح شد کسی استخدام بشه برای کمفروشی از کردیم این معامله باطل در بحث استخدام بعد توضیحا از کردم کرارم و مراره در بحث استخدام اونی که مهمه اون که ما یک با علیه طرفان چون توضیحش چند بار از خیلی دویه تقیبا نمی کنن ما یک با علیه طرفان اگر یک با علیه طرفان و این که کم فروشی بکنه خود تطریف توی عقد قرار بگیر اون عقد باسه اگر یک سفه با طرفان بر خوب وزن، خوب دخل کنید میگه کارشون اینجا وض می کردنه بعد از اینکه این معامله همون شد میگه آجان پیش ما ما چلپنجه در سال معاملات مثلا با تطریف ها اینجا اینجور کم بکنم اونجور اینجور کم عقد معامله بر عنوان وزن بودن بسته شد اما تو مقام عمل تطریف میکنه نصف از معاملات تطریف میکنه حسب ظاهره اجرت درسته اقت معامله درسته اصل اجرتش اون عملش حرامه، خوب کنه. بکنه اما اگر نه در خود عقل استخدام اینو عرض کرد من استخدام میشن برای وزانی و جنسی که شما داری نصفش تو تطویف میشه نصفش نمیشه این خودش رو عقل استخدام بکنه برای این کار که نصفش تطویف نصفش غیر تطویف این هم باطله عقل اصلا باطله عقل اینجوری باطله پس در باب استخدام چیه که از مسئله که الان زیاد ابتلابه شده مثلا در این کشورهای خارج این بود پس تو رستوران کارش مثلا میگه ما عمد قرارداد قضا ببرن اما ممکنه بعد این سینه قضا گوشت خوب باشه ببینید اگر قراردادش رو بردن خوب باشه اون حرام قراردادش رو بردن غذا باشه گاهی گوشت و خوب یا گاهی گوشت و, و گوشت اون قرارداد باطل نمیشه. اون نقطه خنیه در با معاملات که بعضی وقتا عمل حرامه اما حرمت عمل به معاوضه صرایت نمیکنه پس در باب استخدام اون مثب به اجاره اجار رو نگاه بکنیم اگر مثب به عقد اجاره با حرام بود اون اجاره باطله اما اگر مثب به عقد اجاره حرام نبود عملا عمل حرام انجام داد بسا مثب به عقد اجاره وزان بودن بود یا چیار بودن بود اما عملاً تعقورشان که این عمل خارجی و حرمت داره اما عقد معامله فاسد نمیشه چون عقد معامله رو عنوان وزن بود تحصیل روش نداره این حالا میدانه بحث دیگری ببینید میدانه که عملاً مبتلاس بس نه فرض این که قرار داده قراردادش وزانی پول گیره وزنانه اما اون گاهی که یه تو نه حرام هم بکن این ظاهرم اوجهتی هم که میگیره درسته چون در باب اجرت تابع عنوان قصده اشکال نداره میدانش مشکل میشه اونجا. اون بحث علم غیر از عنوان قصده اون یه مقداری مشکل میشه اون انصافه میشه. این راجع به مسئله تطوری نظای طولانی صبح بعد از فروعش هم بردها در میدان مسئله بعدی که ایشان به اصطلاح فرمودن تنجیم از ما در قراری که گذشته بودیم که اتفاق حروف هجایی تغییر خلق الله هم اضافه بکنیم چون نه مرحوم شیخ تغییر خلق الله نه مرحوم استاد این کتابایی که من دیدم تغییر خلق الله تو محرمات نگردن و این هم یکی ای از عناوین که از آمده که شیطان میگه که من لا امرن نه و من امرشون میکنم چه نمیکنم ولی غیرن خلق الله خلقداری تغییر میده این تغییر خلق الله الان تو زمان ما اطلاع تیدا کرده تبدیلی جنسیت هست مثلا اعتقاد رحم هر انتقال نطفه هست این مثلا همین چیه شبیه سازی هست این تغییر خلق الله فعلا بر اثر پیش تو زمان ما نستازن موضوع ازیاد شده. حالا ما برای این که کتاب رو به هم نظرین فعلا انامین رو که مرموم هاشی خرمدن مصرح میزنیم تغییر خلق الله رو آخر که از کردیم معامله در این سلطه دیگه برمودن در صورت اول باطل میشه در سلطه دوم احتمال صحت هست و احتمال که خیار داشته سه همی هم سعیه با نه نه اون نمی کن. چون هم خارجی از معامله هست اون از کردم اشمال اشاره اجمالی. کن به هر حال ما فعلا عنوان تنجین رو که مرحوم شیخ و دیگران طبعا این عنوان تنجیم در اطلاعی از خطب در عنوان مخاصر محرمه از آمده که بول مرحوم شیخ مسئله ششم مسئله ششم از کل عنوان به اصطلاح چارم نوعه چارم نوعه چارم, چارم. چیزایی که عمل فی نقصه حرامه اخد اجرد با کنگیردن و اینها حرام میشه یکی هم تنجیمه در حرف تا چارم نیست در کل چارمه از کردیم تنجیم روز محرمات و به مناسبت حرفت تنجیم در بحث مکاسب هم وارد شد راجع به تنجیم و ارتباط انسان با عالم بالا و ستارگان میدن ستارگان بدون شک امر قدیمی در تاریخ بشن این در قدیم ترین تمدن ها که پیدا شده قبر هایی که پیدا شده نفت هایی که توی دیوارهای های پیدا شده مثلا از ما و ستارگان اینها وجود وجود ارتباط انسان با آسمان به استثنائی این که قسمتیش که هر روز ما مبتلا هستیم مثلا روز و شب و اینا ها هستیم مسئله کشاورزی و تغییراتی که در روی زمین داده میشه به خاطر ارتباط با خورشید یه مسئله است. ارتباط انسان با ما خیلی کمه بیشتر و حالت روانی و غیروانی و از کنیم جذرومت دریاها و عادت ماهیانه خانم ها و اینا ارتباط ما با خرشید زیاده و ارتباط ما با بحیه ستارگان ستارگان میشه شهره و غیرش نمیدونه که در قدیم قارب در جوزا و سنبلو این اقرب رو مثلا ارتباط ما با بحیه ستارگان این هم یک است ای که بسیار قدیمیه اینکه از چیزهایی که از قدیم در زندگی بشر بوده به شهالت قطعی این قبرها و قارها و اینا که انسان نگاه کنه به ها و اینا و تاریخ مثلا چین مثلا بیش از هزار سال سابقه رصد نجوم و احکام نجومی داره و کلالب بابل در عراق مصر چون مواطن مهم تمدن این چند تا است و یونان است و هند است و چین تمدن ایران هم چندان قدیمه اما خب بیشتر گرفته این از دیگران در کشورهای مثل آمیتای لاتین هم الان آسايي هستید همونلا که خیلی سوت بدویه خیلی سوت ضعیفی اما ما آثار تمدن بشری که در رابطه با آسمان و بوزنجوم و واس با سالگار باشه یه سابقه بسیار طولانی داره. و به شک دفعه حبیبی دیگه چیز خاصی هم نیست. این رابطه‌ای که انسان با طبیعت تب... سیلام می‌کنه خیلی وقتا مثلا مثلا رابطه با یک گیاه با یک درخت مثلا با یک درخت رابطه مثلا تلسماتی پیدا می‌کنه، توصل بهش می‌کنه، بهش ببین این سبس می از نهایت صرف می‌چسونه. یعنی رابطه ای انسان با خیلی از اشیاء طبیعی، تحول پیدا کرده به یک رابطه قبی، سحرالود، ساحری، مثلا کاهنی. رابطه این جور روابط اینم تو زندگی بشر هست، این تازگی نداره. و اینم یه حد معین نداره، دیگه درجات عوامی صرف، بگیرین تا به درجات بالا. کاریم که تو علماش هم به یک درجاتی پیدا میشه این هم هست یعنی اینطور نبوده که این یک مطلب خوب دقیق بکنید یک مشکل دیگه این که آلودیگی این مسائل علمی با مسائل به احساس سهر و تسمات و جنبه های غیبی و جنبه های به احساس ادراکات بشری به حسن اجتماعات این فرق میکرده خود این جامعه ای که الان محل کلام ماست چون اعرض کردم پیغمبر اکرم در جامعه مکه و بعد مدینه در این دو جامعه رشد مسلمون ها بوده ارتباط خارجی اینها هم بیشتر با دو نقطه بوده که یمن بوده و یکی هم شامان هر دو نقطه جزء مراکز تمدن نجومی نیستن خود مکه و مدینه که خیلی متخلف اما یمن و شام هم مثلا حالا شرح تورانی داره میخوام بعد عرض میتونم خلال بحثه یکی میم مثلا مصر چرا تمدن نجومی داشت خود ایران داشت اما مثلا عرب مکتب ودینه و حتی مسلمان صدر اول با ایران رابطه نداشتن به پس مداره نمی آمدن همه اصلا با مجوز خیلی ارتباط نداشتن چه ایران چه خیلی ایران خیلی رابطه محدودی داشتن این سونو به هم سنت اهل کتاب که اسرایم برکت ندارد و جمادیوس میگن بعد از اسلام آوردن اهل بهرینه چون علاقه بر هر دن و از خالد که فرستاد صحبتی شد تیغه بر ونها فرند که فهمنه ما اینجا مجوز دارند تو بحرین حضرت هر دن به هم سنت اهل کتاب اصلا برخورد نداشتن برخورد با مجوز نداشتن در خود آیه مورکه اسم مجوز آمده نه آیه اما برخورد خارجی نداشتن خوب از خود رو که من برحکم هم این بباید معروفی که ما داریم سمول رؤیت و افترول رؤیت این در کتب اهل سنت صدری داره در کتب ما نیامده من نیدم در مسادر ما تا من دیدن نیدم حتی مسادر مثل مرحوم شیخ توسی در خلاف هم نرم نکنن و اون اینطوری که قال رسول الله الله علیه علیه انا امتون امیه ما مردمان بی سوازی هستیم لا نکتوب و لا نحصوب نه نوشتن بردیم و نه حساب این حساب در اینجا ریاضیات نیست نجومه این حساب در اینجا مراد علم نجومه حالا بعدها هم که نجوم و محره کردن در فلسفه وستا به اصطلاح خودشون جز ریاضیات حسابش کردن نه فلسفه علیا نه دنیا نه فلسفه بالا پایین در فلسفه وستا در مثل شفایش خوراییست این توی فرو ریاضیات حسابه شد پس مراد از کلمه ایلا نحصب علم نجومه و در خود و قرآن هم اشاره بین حضرته علم و حضرت سنین وله حساب تو اون روایتی هم که در با اول ماه رمزاد داره که میگه ما در بغداد ماه رو ندیدیم و یقولول حساب من قبلنا و یقولول حساب بگرد بکنیم اون محاصلی مراد از محاصل رنجان نجومه منجمینه دقیق کردیم این یه توضیحاتی داره که خب چون مرحوم شیخ واضح این بحث مفصل, مفصل شده استاد بحث شون. بیگه مجبور ما یه مقداری هم جمع جور بکنیم حرفای شیخ رو واضح بحث بشیم من قبل از این که بحث بشم اولا از شیخ میکنم قبل از اون یک توضیح عرض بکنم از کردم راجع به محدوده علم اسلامی یک کتابی سیر مستشریخ نوشته الیلینا الیلینا همیشه اسم نیسته شما حس نکردم چند بالی بر. به نام تاریخ نجوم اسلامی اون آهای احمد آرام که مترجمان بسیار مختلف است انصافه در فرهنگ محاصر ما ایشون ترجمه به فارسی کرده خیلی این شخص نحمر که شیده این کتاب تاریخ نجوم اسلامی بسیار کتاب نافعی است ما در خلاق بحثا به مقدار ضرورت از این کتاب قسمی یعنی به مقدار لازم از بخشای کتاب هم استفاده فایل کرد. خوب دقت بفرمایید کاشی شیخ از اول کار یا علما دیگه این اصطلاحاتی رو که ما در اینجا داریم الفاظ و مفرداتی که وارد شده به کار می‌بردن خیلی مهم بود ببینید مثلا نبواب مثال کُلن فضا که نیستم این شخص معتبره اصطلاح فلک در قرآن غیر از اصطلاح فلک در النجوم بعدها که این مجمومی یونانی ترجمه شد آمد تو دنیا اسلام این دو تاری یکی که هستند که من اینشالله عرض می کنم بعد اینشالله خدمتون عرض این یک سابقه قطعی بسیار قویدی که عرب داره ساحل منجم کاهن اینا اناوینی هستند که در روایات آمده و در تاریخ آمده و منجمین مشهوری داشتن سهره و کهنهی مشهوری داشتن اینجا من اگه ان شاءالله فرصتی شود برای بله توضیح ذهنی هست از از جان اون که اینها در نجوم داشتن که حالا بعدم درشون عبارت خواهد آمد که خود روایتی داریم کانو و یک تمپرون بلعنوا این کلمه نمر رو اون چیزی که میفهمم توضیح در میکنم یکی از راهایی که در نجوم پیش اونها موثر بود که خیلی شایع بود مسئله استمتار به عنوان استمتار باران این یه محاسباتی مثلا این ستاره اگر میافتاد یک این ستاره محاینه که بعد عرض می کنم قروب می کرد می گفتن امسال مثلا باران زیاد خواهد شد یا امسال باران کم خواهد شد این اصطلاحات رو اگر حالا چون ما در خلال بحث می عرض ارز بکنم از اینجا ما در خلال بحث این انفاظی که در مجموعه روایت آمده توض چون گاهی اوقات یک لحظه واحد در اثر گذشته زمان عوض میشه همین لفظ منجم دقت کنید منجم من صدق منجممم من این منجم در افسده بیشتر مال همین پیشگویی ها بوده اعتقادات به تأثیرات فلکی اما بعدها منجم به معنای علم نجومه که شاخی از ریاضه اصابه شن اون به اولش و لذا مرحوم نراقی در مستند متعرض این بحث شده در بحث روایت هلاله ملاحظه فرمود مستند مرحوم نراقی میگه اصلا این منجیه این که ما الان میگیم که علم نجوم غیر از اون منجیه در روایت دو تا بحثه لذا خوب یک طرز فرض اگه مرحوم شیخ یا بزرگان ما می اول اون الفاظی که به کار برده می شده مفسر مثلا یک مقدار از نجومش برمیگشته به تسخیر نمیدونم ترشته محکل به خورشید و ماه و به اصطلاح تسخیرات و که اصطلاح هم تلسکات بشونید یک مقدار به او برمیگشته پس ما یک اناوین مختلفی داریم اناوین صاحب داریم اناوین کاهن داریم اناوین به اصطلاح منجم داریم این اناوین باید توضیح داده بشه و چون عرب جاهلی در یک جهل مطلق زندگی که عرب جاهلی هم در اینجا باز ما مراد اون بیشتر جبل مدینه است که یک مقدار عالم بودن خاطر که یهود اهل کتاب بودن اینا می یه مقداری که یاد بودن اون عرب جاهلی وقتی میگه اون که تو صحرا بودن اون که هیچی بلد نبود کلا نرمی قزای اجنبی بودن هم اینها هم که عالم بودن فی جمله باز با مسائل نجومی به نحوه علمی خیلی آگاهی از اذكرها سیر ارتباط مسلمانان صدر اول واضحه در این سیر اصطلاحات و نجومی کنه از خود پیغمبرم نردوی که ما اهل محاسبات نجومی سیم نرسون فرانه نامتون نا امیه لا نفت و لا نفت فسومون لرؤیته و اثرون لرؤیته ما محاسبات حساب نکنیم تا ماه رو دید این روزه بگیم ماه رو دید حساب رو به دنبال محاسبات نباشید و من عرض کردم نکته فنی چون خیلی مشاله رساله در حلال نوشتن از کرد این که نوشته شده خیلی اون فنی نیست نکته فنی در بحث حلال اینه که امر یا یهظور رو بین همه یا به دنبال محاسبات یا به دنبال روگرن خلاصه بعد که نوشته شده از صلح به بحث خارجن ما یا باید به دنبال محاسبات باشیم یا به دنبال رویت تیغنبر همون دنبال رویت به دنبال رویت و در روایات از امام هادی هم داریم از که محاسبات زمان تیغنبر خیلی کم بود یعنی مثالی که نبود اما زمان امام هادی و بغداد دیگه محاسبات, محاسبات بود وقتی یه نونجی بود ولی تو سو سوال اینطور آمده ما در بغداد ندیدیم خوب دقیق کنیم لکه محاسب حساب منجمی میگن توی مناطق غربی مثل اندولوس تسریه میکنه حالا ما میگم غربون که اندولوس میگه در این تو اندولوس میبه میشه یعنی طبق محاسبات از محاق در آمده اما طبق رویت رویت نمیشه اما میکنم نه اعتبار اون به, به محاسبات نمیشه لذا باز خوب دقت کرد در نظر ما سلو به بحثی در رویت الاریس رو این دو جهت قرار می‌دادند یه مقدار مشکلات آن کمتر می‌شد، برای او چند تر مطرح می‌شد. ابو ریحان بیرونیان در الاثار الباقیه باقیه، اگر کتاب‌های ابو ریحان یا مسئولی در این جهت مراجعه بشه، خیلی مفیدی کتاب‌های ابو ریحان یک تفیم پیز، تند، لعاب آل از تنجیم داره تفیم و اول یکی هم علا هم از علاج آثار باقیه. یه مردان کتاب تریمال هند من تریمال هند ندارم، اما نرلا کرد. خیلی رو نجومی کار کرده عبوره هان بیرونی الان که به مکان چون من چون در خیلال بحثان از طریقم برکن این رواست مشهور من صدق منجمان المنجم و کرکاهن و کرکاهن و کرکاهن و صاحب نار کافرون از طریقم برکن راجب به منجم نهره شده خوب دقت بکنید. از طریقم برکن راجب به حساب هم نهره شده در خود قرآن هم حساب آمده لطه علم و عدد و حساب این در خود قرآن آمده که در اینجا مراد علمه. علم علم نوجود محاسبات فلکی دلقه دلقه دلقه. بعدها مهمترین تحولی که انجام شد عملا در دنیای اسلام خب اینطور نموشید با گفته پیغمبر رکم به هم بخوره میامدن فلسون یک منجی میامد به عمر گفت امسال در این سفر ندارد اونجور میشه این مطالب پیش آمد مخصوصا یک مقدار که اگر و از حال بکنن کل این رواده جمع کنن واقعا یک دو جل کتاب خواهد شد یک مقدار غیبگویی و پیشگویی هایی در اسلام واقع شد اگر انسان این رواده غیبگویی چه صحیح و چه صقیم تو میزنید بعد از این که مشروط انجام شد مثلا اختلاف الاجم فی کلمت الان یک تلافی و قلوب کل معلومی جلی حدیث کرده راجب به مشروطه و یه حدیث درست کرده ازشه خود نوری ازاش خود ترسی و خاله خوبی یا پیاس را بیختن الان چ آکان ما در اخبار پیشگویی حتی این پیشی های ای هم داریم که چیزی س ذوق داشته باشه کل در رواس پیش بی... از این جمع آوراض پیشگویی تازگی نداره ا فقط همین سییه بخاری کتاب بدیم ملاهم و بلتن داره یک بخشش و بتیم. کل روایات پیشگووییی مثلا شهر قضیه این که شد، چهر اینقدر ما روایت... مثلا بعضو روایتی که در باب مسجد کوفه هست این جزء پیشوییه چون مسجد کوفه اصلا نبود اصلا نه کوفه و تنزه مسجد کوفه اینه که پیغمبر ما مینده اش به روش اینجا مسجدی خواهد شد اینها جزء روایت پیشویی کل روایات پیشویی جنب بشه خیلی مهمه خب تاون از کسانی ای که در در خیلی روی صحبت کردن خود یه فصلی ابن عبدالحدید داره. داره یادم جلسه جل سه شار سه شاش یادم هسته اخبار یکی از مزایای همین رومانی این خبردازن همین رومان از غیبیات بود حتی برانستان نخف که در بسره از این خبری که این بسره این تو خواهد شد تو خواهد شد یادم به آینده بسر رو گفتن بعد یکی از این عربای جل پایی بر بود گفت سبحان الله ما افسحه که کاردم خیلی دروغا رو قشنگ خوش درام دیدی دستاش رو بلند ایمورد نادر علی نخواه حالا این که ماکان این مسائل غیبگویی هم بهش اضافه شد وقتی دو جور در حقیقت غیب آمد بدی که از صاعمیر و, و در خود ظاهر و خود قرآن هم دروجی که داره سوال نقل و نقلان کبیر و کثیر کبیر در خود قرآن است یک غیب هم که مستند به بود درده خوب دقیق بکنیم ما در حیص مجموع مجموعه از این روایات داریم تو این روایات داریم که یک مناجیم برموم بگو این سفر شما این طوره ای که به ما مصادر گفت مجموعه از این روایات داریم مرحوم شیخ این مجموعه رو یک جا نیوارده یک تقسیم بندی موضوعی کرده به مناسبات موضوع این روایات رو آورده این بنوست هم اجمالا در کلمات اصحاب مطرح شد کسی که تقریبا تونس در این بحث مفصل بنویسه برای اولین بار به حسب زنده زن بنده ممکنه قبل از جان نوش نوشته مرحوم سید مرتضی رحمت الله که سن می اعتقاد به تأثیر نجوم کفر از و چین است هم توی قرر خودش داره قرر و زرر که این در به اسم عمالی سید مرتضی و هم تو رسائل جلد دوی مجموعه رسائل سید مرتضی بحثی در اونجا داره بعد از او بیشتر به بی این شد که این تنجیم حرامه از علمای ما که سعی کرد یک نحوی دفاع از او بکنه مرمون سید ابن طاوز سعر و سعود رو نرشته از سید یک خاص داره و تعلیف ایشان ایشان اصرار داره که بعد از این حوادث درسته و بعض از علما هم به نجوم اشتغال داشتن و یک نجومی که حرام و نجومیست که اعتقاد به کفر باشه نژوفی نفسه حرام نیست علم نژوفی نفسه حرام نیست دانستن اوضاع فلکی است و حتی دانستن که اینها تاثیراتی خواهند کرد خیلی اهمیت داره چون صد داستان های صادق اخباراتی که اینها واقعی شدند و درست درآمدند و واقعی درآمدند و چیزای نادر ریالون سر و صوغ و نغلام الله تعالی تقریبا میشه گفت کتاب ایشان بیشتر در دفاع از علم نجوم های کار کلی ایشان در این کتاب اما خب بعدها در مثل شرایط تنجیم حرام و بعد یه قواعد علامه تنجیم حرام این کتاب های بعدی ما در بخش مقاست محرمه جز ایکی از محرم ها تنجیم گرفته به این مناسبه از رسید زمان شیخ انسایی که البته مرمون شیخ انصاری با یک تفصیل بیشتری وارد شد یعنی با این معنا که خود نجوم به عنوان حرام نیست یک اعتقادات جمعی یعنی اون نجومی که یک علم خاصی است یک اعتقاد خاصیه اما معرفت نجوم و معرفت سیارات و آدم فرسان رسد خانه رو بکنه و رسد بکنه اونها رو نه اون چیزی ندار البته این منوشون به که از یونان و هندوینا آمده بود بعدها تاثیر ترسید مسلمان ها خیلی پیشرفت داده شد مخصوم ترسید افراد مثل خاشنسید که ایشون رسد خانه مراقه رو هم تحسید کرد این من یک اجمال خیلی مجمنی خدمتون رو هست کردم پس ما عادتا در مواحص فقیمون ما سیر تاریخی رو بررسیمیم اول روایت رسول الله بعد روایات اینه بعد مثلا کلمات بقیه ها اما اینجا الان مراعات این بحث خیلی به همریکی هستنین انصافا ترکیب شروع به همریکی شده حالا ما سر میکنیم اول و خیلی هم کلام مرحوم شیخ قدس الله و سره طولانیه یعنی در بحث به اصطلاح نجوم بسیار بحث طولانی است در این فاضل محاسمان از حفیل 19 تا 85 استاد شده من یه مقداری از کلمات شیخ رو میخونه صرف همون قاضی خودمون حالا چون مرحوم شیخ روایات رو آورده صرف همون قاعده سعی میکنیم برگردیم به به روایات رسول الله اونا رو تنقید بکنیم به شواهد کتابی رو ان شاء بکنیم تا برگردیم به روایات و بعد به کلمات اصحاب و کاری که مرحوم سید مرزا کرده و کاری که مرحوم مرحوم سید امحاضوس و دیگه بعد نتیجه نهایی در این مسئله به ازمال الله تبارکتان مرحوم شیخ فرموندن از تنجیم حرام و ها با کم آفی جامعه المقاصد از سر رسیدن به جامعه المقاصد علامه محقق در شرایه در شرایه این رومور در همین بحث مقاصد محرمه علامه هم مثل خواهر ایشان از ایشان گرفتن جامعه المقاصد که شرح قواهد علامه است ایشون اینجوری گفته از, از کلم این حالا طرح اول بحث ما البته برای آشنایی ذهن آقایان با مسئله مرحوم جامعه مسائل الاخبار و ان احکام نجوم به اعتبار حرکات الفلكیه و الاتصالات کوکبیه اینها از این راه که مثلا این مثلا اتصالات کوکی مثلا دو تا ستاره رو نقش میدونستان دو تا سر رو میدونستان اگر تقارن نقش بشه یک دو تقارن ستاره بشه این اتصالات کوکبیه و اینکه مثلا چین مثلا فلان ستاره طلوع میکنه فلان ستاره غروب میکنه اگه غروب کرد علامت اینه این مراد ایشون از حرکات فلکی ایشون برهوشه در خلال بحث‌های آینده این رو به معنای طنجیم میگیرن این اگنوسیست که شیء اینگی بالمعنی الذي فسرناه مراد ایشون بالمعنی الذي فسرناه ای وای جو محاسبهه علوکی ای خود خود جامعه تفسیر هم اصلا تعبیر خودش ابهام داره احکام نجوم به اعتبار حرکات خود این ابهام داره اگر مراد از حرک... احکام و وضع ستاره ها طول و... مثلا فرض کنیم مثلا اینو حتی دارم من دیدم بعضی ستاره هایی که ممکنن چندین هزار سال نوری با ما فاصله دارن ممکنه مثلا در خلال امسال به نزدیک ترین فاصله خودشون برسن در اون مداری که دارن بعد یا دور بشن همین ستارهی که چندین هزار سال مدار نوری چندین هزار سال من سال نوری با ما فاطر عجیب عجیبه در وقت مثلا در پولان روز که به نظری فیل نقصر نسته تأثیرش رو کاری زمین اینه من دیدم در پیش بگویای کینان یعنی در مطالبی که دارم اگر مرادیشان از احکام نجوم باشی احکام علمی سلام به دنیا علم حالا به هر حال خود عبارت جامعه مقاسد به نظر ما خیلی واضح و گویا نیست لیکن از به امره که انما مرحوم شیخ قدس الله نفسی یعنی عبارت متفق من علیه ها گرفتنه شدنن این بالمعنه ریفت از سرنا فی ما بعد نهارو حالا الله تعالی شون مطالب را از کرد مرحوم شیخ در حقیقت اون گفت از میانه کار شده از عبارت جامع قاسد که در برن ده همه رضوان الله تعالی بعد ایشون چهار مقام رو به قول خودشون چهار مقام رو ب... مسرح کردم برای توضیح مطلب من برای اینکه که کمی روشنی ذهن ایجاد بشه قبل از اینکه وارد بارده روایت بشیم من به ذهنم این که بارده همون بحث دروایت خودمون بشیم به تحفیق خودمون یک مقداری که مقداری عبارت شیخ رو بخونیم تا روشن بشیم یکیش ایشون نمیشتی گاهی اخبارت از اوضاع فلکیه مثل اینکه خبر از خسوف بده یا خصوف بده. شما میگه این که حرام نیست چون مثلا ماه چقدر با ما فاصله داره من قرارن عذ کردم نسبت به اجرام سماوی که دار مزار کره زمین هست ماه نزدیکترین جرم سماوی ما ما دیگه از ماه نزدیکتر نزدیکی و پیشرفته ای که بشه کرد ماه و قر ماه رو مدتها ردیابی مشکل است الان نسبت به ماه حتی به مقدار متر می می‌کنم مثلا میگه ماه فاصلهش به کره زمین چند هزار چقدر کیلومتر دو متر این طوری مثلا یک کیلومتر دو کیلومتر اینا را مشخص این قد به اصلاح محاسبات میکنن ایشون میگه که این اشکال نداره اعتقاد نداره،, نداره این به حساب ما هم که این حساب به طال ما عدد سنیم حساب امسا شیخ با آیه ذکر نکرده این سنیم به حساب همینه هم. بلکه یجوز را اخبار بذاره اما جنمن البته اما جنت من از تن از علمای عتره و برهان و ظن نه بیات غیر برهان شواص خود علم میجوم حالا اونها تجربه دارن حساب دارن کتاب دارن الان که به وسیله به اصطلاح رستخانه های پیشرفته و این دوربین های پیشرفته ای که دارن های پیشرفته ای که پیدا کردن من یه جوری خوندم می‌خستم هم دروغ باشه ان که با آخرین به ازا چیزی که در تلسکوپ راست خدایان میتونن تا 500 هزار سال نوری فاصله نجومی که که تا 500 هزار سال نوری اجرام سمایی با ما فاصله دارن کشف و دیدن میکاب خیلی راست اگر راست باشه خیلی عجیبیه میلیون سال نوری واقعا چون خودش چند سال نوری هستن مغز آدم متهیل میشه اگر راست باشه که با این تلسکوپ تونستن تا عمق فضا به فاصله 500 هزار سال نوری نفوذ بکنه انصافا چیز عجیبی است حرف این حرفا جز من زنن فلان به اصطلاح اینا دیگه توی علم این حرفا بحثی از من زنن یه زاوات خاص خودشون دارن یاران خاص خودشون هر نظری یک سری علمی خودش داره عنوان تئوری فرض میشه بعد پشتیبانی میشه بعد محاسبات میکنن انسان رو خاص خودشه از این حرفای امارات ما مرا شما رو اونجا مثلا نفر وقت اعتبره بذاره که جملتون من منع کرت از کردم من هم از سهل مرتضا راست سهل مرتضا ارز کردم نسبتا تا اونجایی که من بودم مرحوم عقل فتر کراچیکی مرحوم کراچیکی کنزور کنزل این هم کسانی است که اجمالا بحثی دار راجب نجوم مرحوم سهل مرتضا مطلبی داره حالا من خودتون مراجعه به نمیخوام <تصفيق> ملاه؟ <تصفيق> چون بعد میاد خودش یه ابرازش رو می‌آوردی نه ملاه؟ سعی نمی‌کنم بعد ابرازش سعی می‌کنم از آن رو بگویم. اما می‌خواید اینجا صفحه چندش رو بگه؟ لذا بگذاری که ما تکیه به خودش است. فعلاً اشاره اجمالی می‌کنم. اینی که من این در این کتابی که من دارم در اون رابطه که وارد رفت رب... در حرکات فلکیه بالکا اینا و رفتی از سامر علاوه‌جو، اول از استقلال. حال از سه درمزده فیما که هم و کیفه مسلمان بطلان احکام نجون و قد از من مسلمون و حدیثا الان تکذیب المنجینی و شهاد و فساد مذهبه و بطلان احکامه و معلومه دین رسول ضرورتن تکذیب و مایده از سه درمزده مفصل داره چون داره بارد رو برخوم هاشیخ در اونجا آورده من امروز غرضم فقط ذهنیت باز بشه که این یک نجون یک عرض عریضی کرده. مسائل خصوف و خصوف و رابطه فاصله ماه و خورشید و خورشید تا زمین و تأثیرات ماه روی زمین و مثلا تأثیرات ماه روی سلطه ده ما این جزا قدید یاد شده تأثیرات ماه روی خونی که خانم ها می تأثیر ماه روی جزمت دریا ها. مثلا تاثیر ماه روی رنگ بعضی از میوه ها که میگن میوه به خاطر اون نور ماه این رنگ رو میگیره اینا مسائل علمی اینا رابطه به کفر و ایمان و این حرفا نداره اینا تابع پیشیگه این فرقی هم نمی کنه تاثیر ما روی اینا رو مثل فرض شما یک تخم می کاشتین درخت درامن هیچ فرقی با هم نمی در علم هر دو یک میگیرن بحث جزم و عمار و اینا هم باعث بحث های علمیه خاص خودشه اینی که مرحوم شیخ میخوان این رو هم این طور بگن بله اون وقت اینشالله بله یک مقدارش هم همینجا داره اینشون همینجایی که الان داریم بله فیرت عبارت این فیشون نوشه ماحاصله اندرک و صوفا و سران الکواکر و اندرسه ساله ها منباب الحساب و سیر الکواکر اینم عبارت سر مرزاست بعدش هم خواهد آن ما اینشالله تعالی اگر خدا توفید بده واسه سید مرزدان و بزرگان ما که در این مسئله وارد شدن بعد متعرض میشیم اینشالله تعالی یعنی که دیگه که بعد میاد مثلا مرحوم سید تابوز رضوان الله تعالی در کتاب سر سعود یک قائمه از اسماع علما اعلام کرده که اینا معاید اینا علم نجوم تایید کرده، دقیق کن در این کتاب آزم محاسس صفحه 27 آمد احتمال ایشون نجاح عبدالرحمن سیاب و حسن بن موسی نوبختی و احمد بن محمد ابن خالد برقی و محمد بن ابی امیر و ابو خالد سجستانی و حسن بن محمد الی یه مقدار اسماء رو مرحوم سید تابوس برده رو این معنا که اینها اهل نجوب بودن. گفتم این رساله در تایید. ان در اونجا ما یه نظریا هم با مرحوم سید بحث می‌کنیم که اصلا ممکن بعضی از این اسما کلاً درست نباشه. می‌گید میخوام خب من همین بحثا اینجا از یه آشهاش این این مباحث رو روشن هر از به هر حال بحث اول اخبار از اوضاع فلکیه بحث دوم به حدوث احکام ادل اتصالات مثلا بگه ماه که در میاد میشه ماه که در میاد مرد میشه یا طلوع میکنم به اصطلاح ماه که در میاد مرد میشه تو غروب که میکنه جرز میشه اینها هم ظاهره شاید در این کتابی که من الان مسترش رو ذهنم نیست چون میگم کار شده اما به نظر این از این علمای منجمه نمیشتن حدود به نظر دو هزار سال قبل سه هزار سال قبل همولین کسیست که خسوف رو پیش می کرد. چند ماه مونده به خسوف گفتو ماه بلان ساعت بلان کذا این مقدار از ماه گرفته میشه بعدم واقع شد اینی که مرموم شیخ میگه اتص... احکام میبگه در وقت حتی مثلا احکام مثل باران مثلا نگاه بکنه چون الان در دنیا تو ایران هموردن حال میشه ازش عمل نکنه میدونام یه جهازی رو درست کردن که 50 سال سیر خمر سیر به اصطلاح درجات حرارت و مقدار ابرها و اینا رو پیش بینی کرده اون وقت طبق این قانون 50 سال پیش میکنن 50 سال زرد کردن به دستگاه در کامپیوتر دادن طبق همون پیش بینی که اگر این هر رسمان مثلا 38 سال قبل اینجا این اینجور شد این نتیجه گرفته شد معروفشون سی ساله در منجم نقدیم از حکم های ترک مدد از ترک خارن نه ترک آزرویجان ترک این من این آمدن سال 12 سال گرفتن همین سال موش و بقره پرنگ و خرگوش شما اینا از راه این سال 12 حیوان معروف به صحب اینشالا من هستم در خیلال بحث ها از خواهد شد الان برای پیش بینی های به حساب 50 سال این 50 سال رو برنامه معین به کامپیوتر دادم 50 سالی که گرفتن 50 سال گذشته تا طب... الان میشد حدود 15 سال قبل 20 سال قبل برنامه که یعنی مثلا سال سال شده تل اون 50 سال حکم میکنه لاکی این رفتی به تفسیر ببینید دقت بکنید اینا فقط یک این حرکت ما این حرکت ورشی این وزن خورشی، این درجه حرارت خورشی این وزن مثلا ستارگاه این تأثیراتو داره باران این قدر میشه اما این که این خود طبیعت درست کرده یا خدا، وارد بحث نمیشه تو تفسیر وارد نمیشه توی تدیده فقط وارد میشه که این چی هست به نام مقال موزی فقط بحث نکن که این چی این کاری خواهد شد طبق تجربیاتی که ما داریم باران امزال این قدر میشه سرما این آدم میشه خودت دقت اما این کار طبیعته یا کار خداست یا کار فرشتگانه اون مرحله تفسیر به اون مرحله نه خودت کاری اینی که برامش میگم کفر نمیاره خب اون آها ممکن از مادی باشه نسبت ماده بذین شما الهی باشین نسبت به خدا بذین بگیم خدا هر اینجور کار کرده این بحث اعتقاد نیست اون که توش اخباره. این هم بحث دوم ایشان البته مرموم شیخ در اینجا یک سری هم نعل فکر کرده می‌خواد این بلا شوخی هم بکنه بله اون چه معروف که مرحوم خادین در اینجا بود و شب رفت داخل حاصیا بینوخاوید حاصیا بونه میگه بارون میاد گفت نه ننی من نگاه کردم ببینم میشه حاصیا بونه میادین سگه من رفت شب بارونش میاد داخل ان شاء داخل و این ان میاد بعد همون شد با خاطرات خادین با اون ارتکاز سگه با هم نرسان به ایشون سویر در حومی شیخ تو زاره شوخی مخواستم کما حکی انهو تفقه لالکل مروجه ها زده که این مطلب برای مروجه اینه. نجوم بل محی نصیر علم لخوزدی واجه به خاضی نصیر ایشی مخواسته که کسی که رئیس این مذهب این تو خطا میکنه باید سگ بحیر بحیر یه بحثی که این اخبار درسته میگه نه خوب خاضی نصیر حکم شد بارا میزه شد یه بحث اینه که کفر نه کفر نیست. دو بحث روشن شد. میگه حاضر به این محاسبه اینجا باران میاد. اصلا نمیاد. کفر نیست. الان اعتقادم الان پیدا بکنیم واقع میشه ممکنه بشه ممکنه نشه. به تعبیر ایشون مراد جیم ان بل محی ظاهرا مراد شیخ اینو شوخی کرده مثلا که ماخه خارجاً شی عرضه. بعد اون قصه سگر نه ولی شو کرد. الان که این مساله این نفسه البته در این که رابطه این رابطه تقریمی هست درسته اما اینکه آیا بشر به تمام اون رابطه من و جاده حاضر داره اون مرده اشکاله حسابه <تصفيق> با